و آله طایبین بین طاهرین المعصومین و که هر صورت که در اینجا مطرح شده که نمید خارج شدیم محمد ابن خمران بود و واقعا دو شخصیت به نام داریم یا یک شخصیت به اسم واقعی چیه و اون که ما الان در روایات در کتب به و و غیرها داریم این وضعش به لحاظ محرفت خودش به لحاظ و به لحاظ اعتماد و روایاتش اینها چطوریه هر شد که محورهای ما این محورهای سگانه رو که اون تحرض شدیم انصافا خالی از یک نوع ادهان نیست در محور روایات عزیزترن محمد ابن مطلقه که از خطب ای که دائما ایلا یه مورد در نهر رجال هم از کردیم یه مقدار اختلاف هست مخصوصاً شیخ توسی در رجالشون ابن نهدی یا مولان نهد رو با ابن نهیان فرق بذاشن که دوتا گرفت و اما در بخص فهرستی که روز آخر رسیدیم حرش شد ابن این کار کرده و نجاشی هم او رو نهدی گرفته. لکن هر دو بزرگوا نه مرخون شیخ توسی و نه نجاشی به دوگومی تعبوز نداره هر کدوم فراد یکی رو آوردن نفی نکرده و یا طریق برای اون دومی دو ذکر نکردن مجرد این که نهدی رو آورده اونم نهدی رو آورده مجرد این مقدار حالا چه باید کرد و نتیجه کارشی. یک توضیحی راجع به عبارت نجاشی اول داده بشه تا بعد بریم ببینیم. که چی کار باید کرد اصلا در عبارت مرحوم نجاشی ایشون طریقی رو که اوورده من توضیحاتش ارز کردم از طریق استادشون ابن جندی از اجازه ابن عهده است. شواهد ما میده که این اجازه ابن جندی اگر هم در اختیار شیخ بوده نقل نکرد ابن شیخ ابن جندی رو درک نکرده و چیزوزی چون فارسی کسی گرفت اما به نقل حال نقل تا با فهرستوری چون اجازه ابن سعد داشت احتمالاً چون اجازه ابن سعد نبوده ندودی ولاطری که شه نه ندن و اجازه ابن سعد ما همین جزء عجایب اجازه است چون مرحوم شیخ میگه به خط خود ابن اوقدر منجیدن اجازه ابن اوقدر به ابن سلط توضیح شده داریم ابن سعد قنویشتی که اهل سنت دارن در وقت فوت ابن اوقدر نوقصاله بوده و هرچی احتمال راس باشه به دونست دروه نباشه ابن عقودهی که واقعا شیخونت الحدیث با اون جلالت قدرش اینقدر احتمال به حضرت حدیث داشتن به بچه محساله به کتاب ها اجازه بده و روایاتش رو خیگه عجیب واقعا چه احتمال میشه بعد از طریق ابن خضال پسر و ابن عقوده از کردیم که دارن مرارن ابن خضال پسر رو در کرده ی توضیحات توی راجب این مطلب هست این شما ها حدیث ایجای پیش آمد اونجا توضیح بیشتری از اما خیلی اجمال شنس هم. ایشون از علی بن سالم نرمو که در سال دویست و سی ایشان اجازه داده اجازه علی بن سالم در سال دویست و سیه در سال دویست و سی حالا ما نبیدونیم علی بن سالم چند ساله بوده در سال دویست و سی ابن یک پسر این و هم باید نساله جوان بوده شد شون هر هم اصطور درشده شد بیسه هم علی ابن سالم اینجا علی ابن نوشه اگر این نسخه درست باشه اصطلاح خط املاع قدیم علی ابن سالم همزه رو باز اگر به جد باشه با همزه می اگر نسال به پدر باشه بین نیسن همزه رو می نیسن اون وقت دیویست و سی به ابن فضل مثلا سی سال قبل از آفاتشه خب جواب بوده برد. اما در سال دیویست علی از شاگرد امام صادق نرمو کنه که دیویست یا و وفات امام صادق سال تفاوت تفاوتش با امام صادق با محمد ابن همرادی یه مقداری بود داره تاره. قال حكاشه محمد بن حمرا يبقى <تصفيق> احیالات رواتبالشی بحثی هستند در نظائر فراوان یاره میان اهل سنت که بحث‌های رجالی کردن زیاد واقع شده زیاد محل کلامه انصافا روش کار کرده و ماها هم داریم ما هم بحث رجالی دارن که مثلا برای شما برای یک نمونه نشون بدم در همین کتاب رجال کشی به یک در رجال کشی این در رجال کشی حدیثی رو نمی کنیم به شما دیست و افتاد حدسانی محمد ابن مسعود قال حدثنا محمد ابن نوسی تا اینجا بعد حدثن محمد ابن او محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی محروف انال ابن علی ابن که معروف هسته پسر علی ابن یختین المشايخ همران اینطور بوده ببینید از محمد ابن عیسی پسر علی ابن یختین از مشایق در یک کتابیست است به نام تکمله رساله عربی این مال استاد نجاشی به ابن قضاری پدر بسیار مرد بزرگوار است ابن غزاری پدر استاد نجاشی و شیخ طوسی این در کتاب تکمله ابن قضاری اینطوره ببینید مرحوم بر... ابن برغوب اینطور می در کتاب منتخبات به روایت ابن از پدرش اثر از ان محمد بن اياس بن ابي زيد دقيقه با رجال كشي جا مي‌شه محمد بن اياس بن ابي انا لحسن بن ابي بن يحيى همين نه نه ببین ان مركه مركه بن ابي ان محمد بن مغره قال حديث المشايخ اين هم سند تمام در نسخه كشي دو تاش افتاده مركه بن ابي و محمد بن مغره افتاده خیلی عجیبینی در کتب اهل سنت هم هست ما هم در چون تصالی این کتاب روزه اردوگر فاید ما هستم تذکار دادم جدمتون ببینید اونجا هم داره اونجا داره ابن یقین هده سنی المشایخ انه را تصادفا مقنم دقیقا مثل همه فقط دو تا از در نسخه مرموم کشی اینی که مرموم نجاشی میگه کتابیشان در رجال کتاب خوبیست بلا که این مراد از اخلاق ایناست این یکی نسخه کشتی من توضیح دادم لازم میخواستم واسه این بحث بشه اجوان کشت کشو مردم کشی اولا خودش تا قم آمده یعنی در مشایخ مشهد نیشابور خراسان بیچاره کشتی دید تا قم آمده اومده مشایخه در جسته بود چهار دو قم در یک قومه ده کوفه و بغدادا نه خوده کشی بعد برگشتن بعد کشو تبرقه کتابو در اونجا نمیشن از حوزه های یه دور بوده ایشان. مشایخ هم درک نکرده. لغت حبیئه کتابو در این هر چه اخلاق باشه باشه، یکی نجوشه یک کسی و لغلاس الان برشون چه نشون دادن. در کتاب ابن خزاعی به سند صحیح این مطلب راغ میکنه و با همون سنده یعنی محمد بن سهل اوبه حسان بن علی میعینی. در حدیث مشایخ این قائل حدیث مشایخ حسن ابن علی میعینی در اما در واقع اون نیز محمد بن محرر کوفی دقیق دارید میشه اشتباه توش اشکالی که در اینجا هست همینه یعنی مشکلی که از آما در روایات داریم محل سنت هم دارونام زیاد دارونام زیاد بحث کردن هیچ از ما توی این بحث ها آورد شدن مشکلی داره غیر از این که علی ابن اثبات ارسن یه مقدار بعد داره که از محمد نهامران ما از کردیم همین روایاتی که الان براتون آوردیم بحث من تزد و جر این هم دقیقا سندش از نوازر علی ابن و دقیقا سندش با این یکیه ابن عقده از ابن فضال از ابن اسباس فقط اونجا داره انه ابراهیم ابن محمد ابن حمران انعبی حاشنی شد مثلا کجا؟ این همه اونجا ای ابراهیم تو کار آمده تو اون ابراهیم مجبوره نمیشن سینش کلدن اینجا مثل ابراهیم نمیشن نه اینجا این روایه رساله عبوغاله هم توضیح ابراهیم چه میدن اینجا روشن شد اینه که ادهی من خواهم توضیح دام خدمتون ادهی از اهل سنت و دیگر مثلا حکم میکنن که علی ابن اصباد نمیربه ان محمد النهام ابراهیم واسه هست در این سنده هم سند مرموم نجاشی این خیلی مهمه چون ابراهی مجهوله اگر سخت قبولی بکنیم سنت مشکل میشه اگر سخت قبول نکنه انا معتبر معتبرشون همیشون بزرگان هست انا مشکل نداره این یک بحث خیلی مهمی که متاسفانه در حدیث هم در احضر سنت آماده از بسه احضر سنت زاویه رجالی رو نگاه کردن ماها زاویه رجالی و فهرتی رو نگاه میکنه و اینا رو چی کار بکنه؟ جور موارد رو مخصوصا اینجایی که مؤثره چرا؟ چون تأثیرش برای این اگر علی ابن باشه در نوازه به شما در فرقیم شیخ هم علی بن اصوات در ابراهیم ابن محمد هن عبی در ناسته نجاچی نیامده حالا اگر بخویم برای شما توضیح بدیم که مثلا کلان آقای شاید خیلی شما متحرزن نشده باشن اما مبانی رو بعد نیست بچوره کدی، حالا اون مبانی مهم رو یه مبنای نسبتاً معروفی دارن اهل سنت در اینجور موارد اون زیادی رو قبول میکنن یا به میسر میکنن علمای ما هم یه اصلی دارن اصالت حدیث زیاده مقدمه صارع اصالت حدیث میگن چه عرض میگن مثلا لم یثبوت بشه داره این یک راه یک راه کلی یک راه کلی هم که بین ادهی از اهل سنت هست بین ما هم مخصوصا کسانی که قاله به تحبود حجیت خبر این برای اول که تحبودی یک فکر نمی کسایی که قاله به حجیت تحبودی میگن هر دو درسته هم ابراهیم باشه درسته هم محمد ان حتما محمد هم مستقی چرا چون سنم معتبر هر دو درسته این هم به نحضی سنت زیاده و این باز یعنی اون نکته اصلیش جاهایی چون شما الان در اصول منتظر شدیم که لوازم و امارات حجت های لوازم با اصول حجت نیست و در اینجا باز به طور کبی یک انقسام پیدا شده بین علمای اهل سمت و حتی در علمای شیعه آیا به لوازم این هم اعتماد بکنیم یا نه یا فقط تحبت ما تحبت داریم یه کار میشنند تحبت داریم که علی ابن اصوات. هم از ابراهیم نارم کرده هم از قدرش محمد ابن حمران لحیل ما اون تقلیم درست این سر را درست فرده. حالا لازمش چیه مثلا لازمش در حدر جانی اینه مثلا بگیم شاید در پیریه محمد ابن حمران رسید بعد رواست از اون نارم کرده بعد محمد بن حمران فوت کرده بقیه رو از طریق پسرشن این لازمه شدی؟ میگه ما کار به این لازمهش نداری یا مثلا لازمهش رو مبانی فهرستی ما که اثر رو کنم خب فکرشن به بحث خودمون بیام بگیم کتاب رو از خود محمد نهمران میده اما اون روایت رو از کسرش میده خوب دقت بکنه کتاب رو از محمد نهمران نه میکنه اون تک روایت از کسرشه لازمه است اون روایت در کتابش نبوده اگر در کتابش سرنوشت معتبره این هر کدام موارد فلسفیه میشه به حجیت ما که خیلی بودجیه این لازمه بحثه نمیکنه البته اگر از این 1400 سال چه در علمای ما چه در علمای اهل سنت ادعایشون به این لوازم فکر نمیکنه تو سنیام دارن بلا میدونم من بحث علی ابن اثبات این که هست الان به کتابش توش ابرالیم نیست این روایت هست این محل کلام. ایده طریق و چون طریق و مشکل داره چون محمد رنه هنگان عبیه در این طریق هم مثلا عبی نیامده خود محمد رنه هنگان عبدالله. اونا مشکل دیگه دار کتاب اصلا سوال روشن که ما ان ما بگیم این طور بگیم این از کنبیه که نش از مباحث کلیدی ها این شما که من دیگه نشه والا برنامه میگه باهنگ شوخی صحبت این اجازه موارد و در کتاب مهم اهل سنت یعنی روایات اون تراز اولیشون سر صدا داره نه این در 2 و 4 و 5 ها مثلا بخاری همین دسته افسرو که عایشه ادعا میکنه اای در باره رشته اون و صفانه فلان شده بخاری رشته افس که رو که نعر میکنه این جمله از طریق مسروق یمنی از طریق امه رومان. امه رومان مادر عایشه خب یکی از اشکالات معروف به کتاب بخاری همینه گیر دادن علما اهل سنت چون نوشتن اصولاً مسرو وقتی مدینه اومد رومان کوش کرده بود خب شو از روات نگند مخصوصا که بخاری معاصره و در که زمان و رو شرط پس یا باید مرسل باشه یا یک اشاره داره نمی شه نقل کنم هر کی وقت است چون وقت ری وت ابادی که توی اخلاقی اصولی درست کرده که اف درباره عایشه در درباره ماریه قتیه یکی از احادیثی که تضیق عث داده واسه آیشه مادر عایشه است عمره و من این آیات درباره عایشه نازل شده راوی شکی ده بخاری کتاب بخاری در اولش میگه من بولر ایندیان که بقیه دیگه حساب بقیه گفت که حساب تحویل هست روشن باشید خود ده نه گیر کردن. که این چطور میشه مسروق از عمر رو ما نمی‌کنه. لذا پنجشون گفتن که مثلا اینجا خرابی داره این محسل این مثلا اتصال داره این اتصال نداره به موارد مشکلی کتاب بخاری به اعتقادی فهم کردن خیلی دفاع از بخاری بعضی مصنفان بودن چون بخاری گفته درست قبوله یعنی <تصفيق> نوازم ببینید ما کارم تو تاریخ نویشه که لمیودن اما بخاری هم بخای نه هم هرچی میگه گفته مخصوصاً اون ما رو که نه کرده پس این درسته حالا اون بحث تاریخی که شروع میبینیم بالاخره این درسته چون بخاری ناراحت گردید اینو که میگم در کلمات هم آمده چون بخاری گفته دیگه شد سند درسته پس درسته دیگه حالا کلی هم عکسけれ انگار که مال کشیم، این درجه که از اهل حدیث، از اهل بستر، با مطالعه و دوست من در نظر از اون چی کاری ما علی حدیثیم. چی کار میکنیم؟ حدیث نداریم. جابر محمد حدیث داریم. گویا حدیث زناب فلان، جابر محمد فلان، حدیث سعد من جابر محمدم. من تمام مطلب نه دو روز که اینم من هم شهری نگفتم. من منم جابر گفتم نه چون خبر. حد که نشه محمد همتون این کار بکنه و اینم حث البته این بحث به شکل‌های مختلف در دراز این من نمیخوام در از این بحث خب یک زمینه فکری کلی طرح بکنم شما خودت بعد برای مراجعه برات تفاصیلش یکی از نقاط مهم در حدیث در دنیای اسلام این هست اونچه که الان علمای ما بشرا رسیدن حالا من مختصر بگم چون این حاضی بحثی قابل اونی که علمای ما بشتیدن اینه که الان دیگه از زمان شیخ محسنان میگه که استاندارد حوزه ما شده از زمان شیخ همیستانی ما به لوازم امارات قبول میکنیم اما به لوازم و اصول عملیه نه در میان احمد سنده و حتی قدیم ما حتی به لوازم و اصول هم عمل میکردن این مثبتات و اصول خود زفتیان این بحثات و مصبت اینه اینی که الان رسیدن این نتیجه نهایی تفتیق قاید بشیم جایی که اصل عملی است ما به لوازمش کار نداریم اما در جایی که اماره است باید به لوازمش مطابقی بشیم مثلا در اینجا گفته کتاب و از محمد نهام را لازمش اینه اگر ابراهیم تو اون حدیث آمده هر قبول کردیم اون از کتاب نیست شاید اون حدیث حدیث سمایی روشه شد به عنوان جم میشه جمع بکنی پس این حدیث من تذرد با قطع نظر با قطع نظر صدوح چون صدوق تاریخ به کتاب محمد المهمران نیست به روایت محمد المهمران حالا از چه کتابی الله با قطع نظر پس این طور بگیم هم که آمده از یک کتابی نقر کرده توش ابراهیم نیست اون هم خالی از شبه نیست محسوسا که طریق بر برمیگرده به صحب به نبی عمر احتمال داره که اسم ابراهیم از ابن نبی آمه افتاده باشه اصلا کتاب میشون با سرخ ممکن ممکنه اونجا قرار از این بحثی که در اینجا الان مطرح کردیم یک ما هر دو را قبول بکنیم بگیم از هر دو نوایت داره دو اون نقیسته را قبول نکنیم زیاده را قبول کنیم بگیم کتاب نجاشی سرخ داره یعنی چی؟ یعنی بگیم اجازه ابن جندی غلط داره یا ابن گفته. علی ابن اثبات مستقیم از محمد ابن را نقل نمی کنه اینم یک راه این راه بیشتر در دنیای یا رجاج و احل سنته مثلا اینم فلانیه ام فلان ام مثلا حسن بطری یک جایی واسطه نباشه میگن نه این لم میدونه که حسن بطری بیشتر اون نقیط ها بیشتر حساب میکنن تا روز ها یک راه هم که راه از بود جمع رین هر دو کنیم یک راه هم اجماع بگیریم شکلیم حکم بکنیم این فعلا نمیدونیم ما نمیدونیم واقعا ابرادیم در سند بودی یا نمیده تو بعد از آسانی هست تو این اجازه فعلا نیست آدم اثری هم داریم برد چرا دیگر نام اثر کرد؟ دارم دارم دارم دارم. اثر کردیم؟ بلا؟ اون شهرت از خارج وقتی به قرآن خارجی اون رو من اعرض کردم به قرآن خارجی ممکنه که فیورزاست محصول به ما مهادی هست و اون قرآن خارجی هست هلا ما توی قرآن داخلی داریم خود ازاد می این راجعه به این مطلب بعد در مرموم نجاشی وجوه اکتماع دیگه هم حقیقه مخصوصا نیم کنیم خودتون بست کنیم بعد نجاشی می کنیم ولها در کتاب تعبیرش اینه. ولی بله آدم کتاب روبات هم کسیه. من از کردم نجاشی رو زنو ناتالانه آزتا کتابیشان فهرسته آزتا مطالبیشان باید حمله برای فهرست بشه لیکن چون خودیشان گفته که کتاب فهرسته گاهی برمان جمله معترضه بحث رجالی هم داری داری یعنی متعرض جات رجالی هم شده که این فهرست مصنفات اصابه اسم کامل کتاب نجاشی و این که مثلا و در اصنا هنگاری مثلا بحث رواید و جاری داره این در اول نجاشی در جلد دو آمده چون در اول جلد اولی مطلب نگفته چون من سوال کردن گفتی؟ یعنی این گفتیم یعنی آنیف تو از کجا؟ این نجاشه اگر کنن کنیم به جامعون دارستیم دو جلده از راسته جلد دوم دارم این دوم اول جلد دومش داریم این عبارت رو تو اول خود جلد اول نداره اونجا نگاه این عبارت ما باشیم مطلقا قواعد معنای فهرستیش چیه معنی فهرستیش اینه که کتاب محمد نهمان در پهوار اصحاب هست ولی اون نجاشی زیاد نیست میکنه ذکر ابو فلفار ذکر و اصحاب ما در پهوار زیاده. یک احتمال ظاهرش با قیاسه کتابش واس باشه و که خیلی بعیده چون مرحوم شیخ از هیچ شهرسی نه اگر و سرس ابن هم خود نجاشتی هم برگشتی فهرستی که اولش مثلا فرسین یعنی اول شیخ اجازش ابن عهده این زیدیست بعد ابن فضال فتحیست بعد ابن اصفاقی که اونم فتحیست هم میگم برد چیه شده یعنی و, و الان اون چیزی که ما الان داریم از ابن عبی و یونس ابن عبی رحمان همه بزرگان شیعن اونی که الان ما داریم تو روایت ما همه بزرگان شیعن ما در کل که از محمد بن همبران در این هفت اش علی بن اسفاط بقیه بزرگان شیعه تن واقعی و ما و نمیدونم تکهی و متخی نداره خارج همه بزرگان شیعه یعنی. و این باز برای ما تعجب آوره که واقعا نجاشی به عنوان دا علی اسم ایشون در دیده همه ذکر این فهرست ابن اواده اجازه ابن اواده برده باشه خیلی عجیبه برای ما اگر مورد عبارات این باشه لکن ظاهرا در اینجا باید از قاعده خارج بشیم بگیم مراد ایشان از رواتون تثیره مراد کنام ایشان رجالیه فهستی نیست ظاهرا اینطور طور بشه و نظر ایشان به همین روایاتی که در کتب اصحابه ما هست پس مراد از روات یعنی همین ابن عبی عمر و یونس مب این بزرگان هست. این رو اگر در شش میگفت در کتاب رجالش هم به من رجال میکردیم نجاشی و شیخ در فهرستشون هم در فهرست باید بکنیم لیکن انصافاً با مجموعه قرآن باید قاید بشیم که نظر مرحوم نجاشی در اینجا مسئله رجالیه یعنی نظر ایشان به روایاته من توضیحاً ارز کردم کتب رجال ما و رجال احرسنت نظرشون به روایاته یا معاصلین خودشون کتب فهارس نظرشون یا به اجازات یا به فهارسته در روایات نیست کاری به روایات ندارد این کلیت قضیه است. اینجا با اینکه که کتاب فهرستیه ناظره به روایات رو ظاهرند علا خلاف قاعده. قبول بریم علا خلاف چون انسجام پیدا می میکنه اگر بگیم نظر ایشان رجالیه خیلی منسجمه انصافا ما در کتاب روایات زیاد داریم وقتی این معناش بگی میشیم که استاد فرمودن به نظر من با این قرینه اگر رجالی که نظر نجاشی این است که در روایات محمد النهمران مصدق همون نهدی است حرف بدی نیست انصافا حرف بدی نیست خیلی عبارت سریع نیست لیکن میشه این مطلب رو فهمید وقت نتیجه چی میشه چه می محمد النهمران در روایات ما نهدی باشه آقیبش نجاشی بخواد بگید این همون سره است چون نیشون که توصیل سریع دید نجاشی گفته سره پس بنابراین با این حساب اگر ما این رو رجالی گرفتیم خوده پس فهرستی نگرفتیم محمد بن همرانی که در روایات هست و فراوانم هست نجاشی در حکست رو توصیح کرده از داته نظر نجاشی این است که این همون محمد بن همران نهزی که اجازه نقدام بده به قریمه زیر و در کتاب روایاتون کسی روی خوده اگر این زیر نبود ما توصیح نمی کردیم. اگر این زیل نبود نمی گفتیم عنوان نجاشی به روایاته خواهدر تمامیش نه بزنید چون اینجا این زیل آمن و این زیل رو نتونستیم فهستی معنا بکنیم چون خلاه ظاهر ظاهره که فهستی باشه زواهرش اینه که رجالیه زواهر روایات اگر رجالی باشه واقع در روایاتی نظرش به روایاته تا نظرش به روایات تو روایات محمد نهوران رو مطلقه تو روایات محمد ابن همران اصلی در کتابه هرمه در یک مورد در تقیه نهدی آماده کنم گفتن در نصحه اصلی با نهدی نیست در تمام مواز کتابه هرمه ما محمد بن همران مطلقه پس به هر حال یک نتیجه سوام این که این محمد ابن همران نهدی باشه نهدی باشه، به نظر نجاشی توسیقش کرده این توسیق نجاشی این محمد بن همران مطلق میخوره آیه همین هم این کاری کردم تا این توضیح هم بنده مردم توصیق نجاشی به محمد بن همران نهزی رو به مطلق هم زدن امساقا با این تقریبی که من عرض کردم در این مورد کلامیشان رو ناظر به روایات میگیریم به اثبات توصیق میشه این تا میگه این محلی و این سوال میمونه که مثل نجاشی چطور میشه متعرض محمد ابن نه اگر نشه؟ اون حمرانه نهیم میگم کسی که از زراره بزرگتر عمرن و از اصحاب و حوارین از سجاد اسمش برده که این میگه محمد در زمان مانوساله مرد بزرگی بوده و چطور میشه نجاشی اسم ایشان نمیده و نظام ما در صابق بنابه به این گداشتیم که این دوتا یکی هم. بعد اخیران یه مقدار دقت بیشتری شد همزاره هنجی هست بقید من نتیجه دقیقم هم برن اگر ایداتون باشن استداره که ما بکنم من از وجود محمد بن همران که سر برادر زراره در رساله عبیقاله غالب آماده اینه از کنم رساله عبی غالب بسیار رساله نافعیه که چند بارن چاپ شده هم به اصطبا در ذرن کشکول مرموم تمام تمامشو کامل اوورده چاپ کرده برها استاد و مرموم آیفتهی چاپ کرده تخییران دوست بزرگوار ما که مح زنابای جلالی حفاظ الله خیلی تحقیق خوبی هم فرمزن کتاب به زحمت کشیدن در این نسخه آیه جلالی حفاظ الله نسخه هم پیشون بود ولی از این نسخه میکنیم بیشتر زحمت کشیدن در صفحه 114 این اینطور داره ولقی بعض و اخوطه یعنی برادران مثل زراره و بوکی و جماعتون من اولاده هم. مثل همزده نهمران این پسر همرانه و قبیت پسر زرار و غیره لغی ابو عبدالله یعفر ابن محمد و ربو ان علیه مسلام و ربو ان یه البته خیلی هزمت بود که هم خدمت امام رسیدن و هم ماشرفشن بانهایی که راوی از کلام امامن مثلا در باری یونوس داری که لغی ابو عبدالله علم یر رهن حضرت در حج دیده اما ازشان رو باید نکنید عرضم من سابقا به اعتماد به این عباره ایشان اعظم خاندان زراری است ابو غالب زراری نوه نوه مرحوم بوکیره بوکیره نهای و بوکیر برادر زراری لکن تمام اینها رو زراری میون بعد که روی کتاب دقت بیشتری شد ایشون یه بحثی دارن صفحه صحیفه بیستحد در اولاد اعیان اعیان که در اینهاستن اولین که در اسلام مسلمان شده خود پدر اعیان که خون باشه که بوده از که های مسیحی بود متنمان هم نمیشه اما خود احیان مسلمان شده معروف که از تردین به لفتلاح چیز بوده اهل روم بوده و بعدها جزو شیبان به بلاک اما در بعضی از تباریف آمده که احیان ایرانی بوده رومی نبوده این هم خاص. این هم تحقیب آوره که ایشون رومی بودن ما. قبولی هست که ایشون ایرانی هست بوده و اصلا زمان احمی رو که مسلمان بشه تو راه اینه بسیار دزدیدن به افطلاح تو راه اینه گرسن به دوزیدنش رو گرسن به بردگی به خودش برده نبوده اینم هست این مطلب رو که نبوده این رو برده از مدرکیش فرض این در تکمله ای که مرحوم ابن قذایی پدر این از خرقه 187 تکمله ابن قذایی است در کتاب رساله ابو خالد ابو خالد شیخ شیخی در زمان و استاد شیخ مفید خیلی مرده بزرگونه ابو خالد ایشان در صفحه 191 در این تکمله داره و ذکر انا کان رجلا من الفوز ایلانی بوده فرس ها در امیر عمیر عمیر علیه علیه السلام بوده یو و یا توالا علی میخواسته بلادشو در بنی حاکم و ترسل امیر علیه فرس هاو پیتنی قومون من بنی شیوان این در راه دوزیدن گرفتن من برشت نه فلم یده او اینا گفتن نه تو باید حتی از بنی شیوان بشی حتی توالا علیه این رو خبن قضائری پدر مخلی. به حال این مطلب راجب محمد ابن داشتم صحبت میکردن در اینجا در سرفه سل خود مرغوم ابو غالب زراری یعنی از اجاید هنوز من نفهمیدم این چطور میشه خود ایشون از خاندان زراره راجب به عریدادش که خبر نداشته در ایشون در اینجا که به اصطلاح نرغم میکنه راجب بچه های عیم که چند تا هستن مشون از راه یک سندی نرم از کتاب ابن صباح مدارنی به ابن سباه. از اونجا نقل میکنه های احیای رو ابتداا بعد میگه و بغیر هادل اسناد خیلی عجیب این از اموهای خودش خیلی تبع نظر با اسناد دارد میکنه اضافه میکنه و بعد میگه به اسناد ال اول از همون کتاب برنوس بعد بچهای زورار رو نقل میکنه بعد بچه های بوکی رو نقل میکنه در در صفحه 132 بچه های همران و ولد همران همزه و اقبه همزه که خب در روات بین هم همزه تبین و به غیرها ولی اصناد و محمد این که برای ما که کار امرو خراب جبی این بود دیدیم خود عبو غالب زراری کشه خوشیه این زمانه در این که اصلا همران بچه ای به اسم محمد داشته برن کلابه روشن رو دیده. من تو اون درسه عرض کرده چون عبارت اولیش نخونده بودیم بعد دو دیشب بود یا پریشب دو مرتبه باید ساله نگاه کردم دیدم تبقیه این عبارتی که ایشان در اینجا داره اصلا در اون سندی که ایشون بچه های اعین و نواه های اعین میکنه. اسم محمد نهمران نیست اصلا اسمش نیست آبا این چرا من من احتمال میدم برطرز هم سر ایشان ثابت باشه این محمد ابن نوران یه تقییه یک مشکلی داشته که حالا رفته فرست مثلا جرجره یا مثلا با نجاشی یه مشکلی تو خسته ایشان هست و به غیرها من اسناد و محمد یعنی معلوم میشه که اصل این که همران بچهی به نام محمد داشته قول خود ایشان در کتاب ابن سباه نبوده کتاب نصب ابن سباه کتاب عریجعور ابن سباه نبوده اصلا. در کتاب دیگری ای دیده این یکی این که خیلی برای من واقعا خیلی واقعا این همه روحات بعد تازه اصل وجودش در خارج مرده اشکال بشه خیلی برای من که واقعا میگم این شب که نگاه کرده یا پریشم خیلی برای من. این یکی دو در تکمله ابو غالب ابو غالب که تکمله ای داره که مفصله ایشون شرحی داره راجب به اون مقداری که با فوت شده از مرحوم ابو و خیلی هم زحمت کشیده انصافت این کتاب قشنگیه بعد ایشون هم با سرد همه رو با سرد برمی کنه بعد بعد ایشون در صفحه 192 میگه و عبدالله بن بکیر و حمزت بن همران و در این صبح و جعفر نه قهنبه نه این هم خیلی عجیبه این هم خیلی عجیبه یکی از عجایب کار مرهوم ابو غالبه ابن ابنالغزادری قلع که واقعا از بزرگان اصحابه آن چی که ما داریم در مواسه فهرستی واقعا درستر صحبه ایشان زیاد میشه نجاشی و ایشان اسم محمد ابن همران نمیبره همزار اسم داره محمد اسم میبره اینا خیلی این واقعا هرچی فکر دارم میکنن این چطور شده نمیتونم احتمال میدم من احتمال میدم ولی المهند الله در حد احتمال انصافه هم نمیتونم خیلی حساب بکنم احتمال میدم که شاید نجاشی چون نجاشی شاگرد مرحوم ابن غذاعیه شاید در ذهن نجاشی این بوده که محمد ابن همراله این استادش مغذاری ثابتش نکرده این احتمال خیلی عجیب علایه حاله خیلی غریب است که خود عبو قالب زراری خیلی توضیح نمیده راجب این و در و دقیق حالا اصناد محمد این یکی یکی اینکه در این کتاب باز در سفته 135 در رساله خود عبو غالب از کتاب صابونی مصری به قول خودشان مراد از صابونی مصری صاحب کتاب مرموم عبالفض صابونی از علمای ما ایما کتاب اینام الفاخر فلفل داشته این جزو قدمای از خوابه مثل ابن الجونهیه فتوا چه محل نظر این صاحبه مرد دقیق و نظری متاسفانه از این کتاب کم به ما رسیده ایشون نوشته به وجه توفی کتاب صابونی این مصری این هم خیلی عجیب کمیش از دیاران نهارم میکنه بر اون بریزاد خودشه ایشون میگه یونس ابن عبدالملک و فلان در مصر بودن و ذکره که کتاب رو درشت وند چعفر فیوم من از مصر این در فیوم و خیه ها قبر عثمان ابن مالک درگی و یونوس ابن غیره بعد در اون کتاب داره و محمد ابن حسین ان ابراهیم ابن محمد ابن همران ان ابی همان ابی عبدالله اینجا مثل محمد ابن همران هست مشکل اینه که کل این عبارت در نسخه مسحه ابو غالب نیست یعنی میگم خیلی ابهام عجیبی در اینجا هست یعنی آیه جلالی مشخص رو از کلمه من عرض مصر تا این ابی عبدالله علیه السلام نمیشن در نسخه که نسخه که مسحه نسخه هست من نگاه کردم سعی ترین نسخه و تر نسخه اصلیه کتاب ابو غالب زداری اینه هر از خود بنده فعلا تحییر ما بیشتر شد به جهتی تدر بسه اینی که انسان این عبارات نگاه میکنه در اصل وجود محمد در حمران محمد تعماله و سه این میدونیم که شیخ و از زمان مرهوم ابو مرهوم ابن الغذایری این همه روایات محمد ابن حمران دیده باشه و در خودش اسم ایشان نبره خیلی, خیلی عجیبه اسم محمد مهمران نبره که بقید در کتوب عربه بیشت سب تار وعد از ایشان بشید داری اینم امتمالی که من میدم شاید نگاشی رزوان تأثراً به استادش ابن غذایری تصورش این بوده که این پسر ابن عقیق نیست که پسر معلوم نیست تو بعضی از کلمات بوده حالا این دیگه چیه؟ این همه رویات ما چه کار بکنیم؟ همه رو بذاریم بله. به نهدی که مرمون نجاشی ظاهرش اینه یا همون احتمالی که من در اصناع که رو کردم چرارم و مرارم شاید محمد در یک ظروف تقییه شدید بوده سر کرده بعدم برای جردگریا از خوط خارج بشه جردگریا و دور از چش باشه اصلا بلاعش عوض کرده از بریشی با خارج کرده. ببنی نه چسبیده و این منشع شده که بگن این پسر و همران نیه چون همون شیبانیه این شیبانی نیست احتمال از اون بر این یک طرف رضیه از یک طرف رضیه مثل مرموم نهدوم سمیه تو جماع اصلا این مشایق نامی نام محمد و همران این مقدمه هم بازده می یک کسی که بخواد خودش این قدر مختفی بکنه حتی مثل پدرشم مختفی بشه این باعبار که ن جماعت با از تو جماعات مشایخ نام نه محمد هم عمر ببینم اونم باز باو نمیشه لذات انشاء قضیه به لحاظ مساوات به نظر ما عبارت نجاشی کافی است برای اینکه شخص معروف در روایات مختلف در خطبه ارعره رو توصیف بکنیم بعد نیست اما واقع مطلب چیه هنوز خیلی ما روشن روشن کلید نیست